سلطان ولت قونیه رجب 643 این حرفها دلم را به درد می آورد آدم ها چطور می توانند درباره کسی که اصلا نمی شناسندش این طور وراجی کنند چقدر از حقیقت فاصله دارند عمق پیوند معنوی پدرم با شمس را درک نمی کنند. پیداست قرآن را هم نمی خانند. چون اگر خوانده بودند میدانستند دانستند قصه های محبت معنوی شبیه این در قرآن هم هست. مثلا دوستی حضرت موسا با حضرت خسرو. مگر در سوره کهف آشکارا نوشته نشده؟ حضرت موسا سرکردهای بزرگ و مردی چنان ممتاز بوده که بعدها به مقام پیامبری می رسد. اما روزی حس می کند نیاز به دوستی دارد تا چشم معنویش را بگشاید. برای یافتن چنین کسی دست به دعا برمیدارد. سرانجام دعایش مستجاب می شود و دوستی که یابد کسی نیست جز حضرت خضر که همیشه به کمک کسانی میشتابد که در تنگناو و سختی گرفتارند. حضرت خیزر به حضرت موسا میگوید من همیشه در سیر و سفرم، تو را شکی به همراهی من نیست. چگونه در برابر چیزی که بدان آگاهی نیافته ای، صبر خواهی کرد، اگر از پی من می آیی، نباید که از من چیزی بپرسی تا من خود تو را از آن آگاه کنم. حضرت موسی در جواب می گوید، بگذار با تو بیایم، اگر خدا بخواهد، مرا صابر خواهی یافت آنچنان که در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم و چیزی نپرسم. به این ترتیب به راه و شهر به شهر و دیار به دیار میگردند. اما حضرت موسی در طول راه سر از کارهای حضرت خیصر در نمی آورد. می بیند کشتی آدمی خوب را غرق می کند. پسر خانوادهی محترم را میکشد و دست آخر دیوار آدمهایی بدسیرت را مرمت می کند نه عدالتی هست نه منطقی نمیتواند جلوه زبانش را بگیرد و ناچار میپرسد چرا این کارها را میکنی این کارها ناپسند است خضر میگوید نگفتم که تو را به همراهی من نیست نگفتم که نباید از من چیزی بپرسی به راهشان ادامه میدهند اما موسا هر بار میپرسد و قولش را زیر پا میگذارد سرانجام خضر میایستد و میگوید اکنون زمان جدایی من و توست و تو را از راز آن کارها که تحملشان را نداشتی آگاه میکنم سپس دلیل همه کارهایش را یک به یک شرح میدهد. آن هنگام موسی میفهمد که در ورای کارهایی که به نظر ناپسند میرسند، توضیحی هست که از آن خبر نداری و در ورای هر شری خیری است در سایه رفاقتش با حضرت خصر چشمش به روی معنویات باز میشود و نظامی را میبیند. که پیش از آن قادر به دیدنش نبود در این دنیا هم درست مثل این قصه دوستی هایی هست که آدمهای فانی درکشان نمی کنند اما در اصل این دوستی ها به روی معرفتی عمیق باز می شود دوستی شمس هم در زندگی پدرم چون این جای گاهی دارد اما بقیه مثل من فکر نمی‌کنند. این را می‌دانم و برای همین نگرانم متاسفانه شمس هم آتش بیار معرکه شده نه تنها کوچکترین کوششی نمی تا دل دیگران را به دست آورد برعکس مدام پا روی دمه اینوان می گذارد. بعضی روزها مثل قطاع جلو اتاق پدرم می نشیند و از اهالی هر کس بخواهد پدرم را ببیند، اول شمس استنتاقش می کند. می پرسد مولانای بزرگ را برای چه می خواهی ببینی؟ طرف هر جوابی که بدهد نمی پسندد و سؤالی دیگر می کند. خب چه حدیه ای برایش آورده ای؟ کسانی که برای ملاقات آمدهاند میمانند چه جوابی بدهند و به تتپته میافتند. شمس هم با چک و لگت بیرونشان می کند. بعضی از این آدمها چند روز بعد دوباره میآیند. اما این بار با هدیههای گرانبها زیر بغل. کشمش لحاف اطلسی قالی اپریشمی، بره و غیره. اما شمس تا چشمش به این هدیه ها عصبانیتش بیشتر می شود. روزی مردی که برای دیدن پدرم آمده بود، اما هر کاری کرده بود، نتوانسته بود از صد شمس بگذرد با عصبانیت فریاد زد، بس دیگر، تو چی هستی که ما را بیرون می کنی؟ از همه می پرسی چی آورده ای؟ خود تو چی؟ مگر خودت چه حدیه ای, ای برای حضرت مولانا؟ شمس در کمال آرامش گفت هدیه من خودمم، من جانم را فدای او کردم. مرد این حرف را که شنید صورتش کبود شد. مات و مبهوت ماند بعد هم راهش را کشید و رفت همان روز پیش شمس رفتم و پرسیدم ناراحت نیستی از این که این همه آدم درست درکت نمی کنند؟ واقعا واقعاً برایت مهم نیست که با تو دشمنی کنند؟ شمس با چشمانی بی حالت نگاهم کرد انگار منظورم را نفهمیده بود. بعد تکان داد و گفت من که دشمن ندارم. کسانی پیدا می‌شوند که از ما انتقاد کنند. رقیب هم داری. بعضی ها هم از ما خوششان نمی آید. اما آشقان خدا دشمن ندارند. ما دشمنی نمی پرورانیم، فرصه. قاعده بیست و این دنیا به کوه میماند هر فریادی که بزنی پژواک همان را میشنوی اگر سخنی خیر از دهانت براید، سخنی خیر پژواک مییابد اگر سخنی شر بر زبان برانی همان شر به سراغت میآید پس هر که در ات سخنی زشت بر زبان راند، تو چهل شبان روز درباره آن انسان سخن نیکو بگو. در پایان چهلوم روز می بینی که همه چیز عوض شده. اگر دلت دگرگون شود، دنیا دگرگون می شود. گفتم، اما تو با آدمها جر و بحث می کنی. حتی دعوا کنی. شمس لبخند زد و گفت با آنها دعوا کنم. با نفسشان دعوا کنم. گفتم اما بعد پشت سرت حرفهای نامربوط میزنند حتی کسانی در میآیند میگویند دوستی دو مرد ممکن نیست اینقدر نزدیک باشد حالا که این طور است حتما خبرهایی هست و بعد مشتی حرف مفت به هم میبافند از این همه پست فطرتی و از اینکه که چون این افکار منحرفی دارند چنان عصبانی میشوم که نگو و نپرس شمس آهی کشید و برایم حکایتی تعریف کرد گفت دو سیاه از شهری به شهری می رفتند. سر راه به رودی خروشان برمیخورند خورند می خواهند از رود بگذرند اما چشمشان به زنی جوان و تنها می که کمی آن سوتر ایستاده و مثل بید می لرزد. یکی از دو سیاه فوری به کمک آن زن می شتابد او را کول میگیرد از رود میگذرد و در آن سوی رود بر زمین میگذاردش و راه می کند. سیاه دیگر نیز از رود میگذرد و به راهشان ادامه میده. اما در باقی راه سیاه دیگر لب از لب نمی گشاید. مدام اخم می کند. از دوستش رو برمیگرداند و آه میکشد. چند ساعت بدین منوال میگذرد تا اینکه سکوتش را میشکند و میگوید برای چه به آن زن کمک کردی تازه آنطور لمسش کردی ممکن بود از راه به کند ممکن بود گولت بزند مگر میشود زن و مرد نامحرم این طور یک دیگر را لمس کنند. کار بسیار زشتی است شایسته ما نیست. سیاهی که زن را بر پشت گرفته بود، صبورانه لبخند میزند. بعد میگوید، ای دوست. من آن زن را در طرف دیگر رود بر زمین گذاشتم تو چرا هنوز او را بر دوش میکشید؟ شمس گفت: « بعضی آدمها اینطورند ترسها و پیش های خود را به دیگران نسبت میدهند و عپ ها و های خود را در آنها میبینند بار اصلی این است ذهنشان پر از زن است بعد هم زیر این بار له می شود. به کسانی که عمق پیوند من و پدرت را درک نمی کنند، بگو ابتدا زنگ از ذهن خود بزدایند